شیعیان زهرا باشد و لیلت رو نفتید و اگر اینطور باشد باید قرآن یه وجود حقیقی داشته باشد غیر از این الفاظ و عبارات و کلمات که اون وجود حقیقی در فاطمه زهرا سلام الله علیه ها قرار داشته باشد تا بگیم شبقه از اینشون است و قرآن در شبقه از شده یعنی در وجود ایشون اون حقیقت وجود خارجیش که شکل داره، حتی میتونه صحبت بکنه حتی میتونه بیبینه حتی میتونه برای انسان شهادت بده میتونه گواهی بده، میتونه در این عالم تصرف بکنه اون قرآن حدیثی که مثلا این قرآن هست در وجود دست ایشون قرار داره و به قول یکی از شعرها باز میگوید که به روز سوم شعبان تمام رحمت یزدان پسان زهره تابان زهرا آشکارا شد خدا را بود در خلقت اگر سر و معمایی زمولود حسین ابن علی حل محماش من خب این بحث باز جالب است که ادامه هم خواهد داشت و بعد خود این مبارکه و الله به اضافه محمد و علی که 268 میشه مطابق میشود با ام المؤمنین یعنی مادر حقیقی مؤمنین توز فارتم زهره کسی دیگه نمیتونه باشه و مؤمنین باید به خودشون ببالن تا قیامت که خدا در عالم واقع و حقیقت و نفس الار چنین مادری میبشون و از این نظر مادر سید و غیر سید هر دویشون میشن به معنی حقیقی مادر بودن به شرط وجود ایمان پس در الله بحث ما امروز اینجا تمام میشن ولی خب مطالب زیادی در این زمینه هست که حالا حالا شاید سالها اگه عمر باشد باید ادامه پیدا بکنند تا ما یه تصمیر واقعا درنبه ها و قیمتی از این کلمات فرآن داشته باشیم و ببینید به قرآن اولین حرفشه چه عظمتی داشت بسمش اسمش چه عظمتی داشت با تحت چه عظمتی داشت و اللهش بر چه نظم و بر چه انسجام و بر چه حقایقی رو نشون میده و اینکه اون الله که اسم وجود حقیقیه دلالت میکنه بر ذات به اضافه همه اصفاتش اون چی میتونه باشه و چی میتونه باشه باز خود الله باید باشه به اضافه محمد به اضافه علی و این سه تا باز مجموعه زهره میده اون هم به نام لیلتا قدر به نام مبارکه و بعد هستی مؤمنین رو در بر میگیره به نام امام مؤمن، ام مؤمنین ام هم به معنی امام است خود امام هم جمع بخونیم ام میشه و ام و امام اصلا به معنی مغز و جوهر و ریشه و اصل هر چیزی هست یعنی مخ هر چیزی رو بهش میگن ام در حقیقه هر روح مقدس و متحر حضرت اثبت کبرا فاطمه زهرا امول عیمت نغبا نجبا سنوات خدا. اگه هم با شهادت امام زین و دارد به این معنا که بعضی از مورخین روز دوازدهم محرم روز شهادتیشون میدونم بعضی از مورخین و علما روز نیست پنجم محرم روز شهادتیشون میدونم ولی در هر حال شهادتیشون در محرم واقع شده است فالبازاج بجاست و شایسته است که ما یادی از مصیبت این امام بزرگوار هم بکنیم دلهای خودمون رو روانه قبرستانی بقی کنیم اول در مدینه طیبه و طاهره السلام و علی ابن الحسین وسيد الساجدين يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه